مصنوی معنوی مولوی. برنامه نهم تفسیر راجع به منال جهاد ال اصغر، اکبر. ای شهان کشتیم ما خسم برون، ماند خسم زوبتر در اندرون کشتن این کار اقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست دوزخ است این نفس و دوزخ اجده کو با دریاها نگردد کم مکاست هفت در یارا در آشامد هنوز کم نگردد سوزش آن خلق سوز سنگ ها و کافران سنگ دل اندر آیند اندروزار و خجل هم نگردد ساکن است چندین غذا تازه حق آید مرورا این ندا سیر گشتی سیر گوید نه هنوز اینت آتش اینت تابش اینت سوز آلم را لقمه کرد و در کشید میداش نرازنان حل مزید حق قدم بروین حد از لا مکان آنگه او ساکن شود از کنفکان چون که جزو دوزخ است این نفس ما طبع کل دارد همیشه ها این قدم حق را بود کورا کشد غیر حق خود کی کمانه او کشد در کمان ننهند الا تیر راست این کمان را گون کشتیر هاست راست شو چون تیر و باره از کمان کسکمان هر راست بچد بی گمان چونکه واگشتم ز پیکار برون روی آوردم به پیکار درون قد رجعنا من جهاد غریم، با نبی اندر جهاد اکبریم قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا بسوزن برکنم این کوه قاف سهل شیر دان که صفحا بشکند شیر است آن که خود را بشکند آمدن رسول روم تا نزد عمر رضی الله عنه و, و دیدن او کرامات عمر را تا عمر آمد ز قیصر یک رسول در مدینه از بیابان نغول گفت کو قصر خلیفه ای حشم تا من اصب رخت را آنجا کشم قوم گفتندش که او را قصر نیست. مر امر را قصر جان روشن است. گرچه از میری ورا آبازه است همچه درویشان مر او را کازه است. ای برادر چون ببینی قصر او چون که در چشم دلت رسته است مو. چشم دل از مو و علت پاک آر. وانگهان دیدار قصرش چشمدار هر راه هست از حوث جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک چون محمد پاک شد زین نار و دود هر کجا رو کرد و چلاح بود چون رفیقی وسوسه بدخواه را کی بدانی سم وجه الله را؟ هر کرا باشد ز سینه فتح باب او ز هر شهری ببیند آفتاب حق پدید است از میان دیگران همچو ماه اندر میان اختران دو سر انگشت برد و چشم نه هیچ بینی از جهان انصاف ده گر نبینی این جهان معدوم نیست. عیب جز زنگشت نفس شوم نیست. تو ز چشمنگشت را بردارهین وانگهانه هرچی میخواهی ببین. نوه را گفتند امت کو سواب. گفت او زانسوی وستخش و سیاب. رو سر در جامه ها پیچیده اید. لاجرم با دیده و نادیده اید آدمی دیدست و باقی پوست است دید آن است آنکه دیده دوست است چونکه که دیده دوست نبود کور به دوست کو باقی نباشد دور به چون رسول روم این الفاظ تر در سما آورد شد مشتاقتر دیده را بر جستن امر گماشت رخت را و اسب را زایع گذاشت هر طرف اندر پی آن مرد کار می شودی پرسان او دیوانوار کین مردی مرد بود اندر جهان و از جهان مانند جان باشد نهان جست او را چون بنده بود، لاجرم جوینده یا بنده بود. دید ارابی زن او را دخیل، گفت امر نک به زیر آن نخیل، زیر خرمابون، ز زی خلقان و جدا، زیر سایه خفته بین سایه خدا، یافتن رسول روم عمر را دیلا و را خفته در زیر درخت آمد و آنجا و از دور ایستاد مر عمر را دید و در لرز افتاد حیبت زان خفته آمد بر رسول حالت خوش کرد در جانش نزول، مهر و حیبت هست زده همدگر، این دو زد را دید جمع اندر جگر. گفت با خود من شهان را دیدم، پیش سلطانان مه و بگزیدم، از شهانم حیبت و ترس نبود، حیبت این مرد هوشم را ربود. رفتم در بیشه شیر و پلنگ روی من زیشان نگردانید رنگ بس شدستم در مساف و کارزار همچو شیر آندم که باشد کارزار بس که خوردم بس زدم زخم گران دل تر بودم از دیگران بی سلاح این مرد خفته بر زمین من به هفت اندام لرزان چیست این؟ حیبت حق است، این از خلق نیست. حیبت این مرد صاحب دلق نیست. هر که ترسید از حق و گزید، گزید ترسد از وی جن و انس و هر که دید. اندر این فکرت به حرمت دست بست، بعد یک ساعت عمر از خواب جهست. سلام کردن رسول روم بر عمر رضی الله عنه. کرد خدمت مر امر را و سلام، گفت پیغمبر سلام آنگه کلام. پس علیکش گفت و او را پیش خواند ایمنش کرد و با پیش خود نشاند. لا تخافو هست نزل خایفان، هست در خور از برای خایف آن. هر که ترسد را ایمن کنند. مردل ترسنده را ساکن کنند آنکه خوفش نیست چون گویی مترس درس چدهی نیست او محتاج درس آن دل از جارفته را دلشاد کرد خاطر ویرانش را آباد کرد بعد از آن گفتش سخنهای دقیق و صفات پاک حق نعما رفیق و از نوازش های حق ابدال را، تا بداند او مقام و حال را، حال چون جلوه است، زانزه با عروس، و این مقامان خلوت آمد با عروس. جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز، وقت خلوت نیست جز شاه عزیز. جلوه کرده خاص و آمان را عروس. خلوتندر شاه باشد با عروس. هست بسیار رحله حال از صوفیان. نادر از اهل مقام اندرمیان از منازل های جانش یاد داد. و سفرهای سفر روانش یاد داد. و زمانی که زمان خالی بوده است. و از مقام قدس که کجلالی بوده است و از هوای کندرو سیمرغ رو پیش از این دیده است پرواز و فتو هر یکی پروازش از آفاق بیش و از امید و نحمت مشتاق بیش چون عمر اغیار رو را یار یافت جان او را طالب اسرار یافت شیخ کامل بود و طالب مشتهی مرد چابک بود و مرکب درگهی دیدان مرشد که او ارشاد داشت تخم پاکند در زمین پاک کاشت سؤال کردن رسول روم از عمر رضی الله عنه مرد گفتش ای امیر المومنین جان زبالا چون در آمد در زمین مرغ بی اندازه چون شد در قفص گفت حق بر جان فسون خواند و قصص بر ادم ها کان ندارد چشم و گوش چون فسون خاند همی آید جوش. از فسون او ادم زود زود خوش معلق میزند سوی وجود باز بر موجود افسون چخاند زود و اسپه در عدم موجود راند گفت در گوش گل و خندانش کرد گفت با سنگ و عقیق کانش کرد گفت با جسم آیت تا جان شد و گفت با خورشید تا رخشان شدو باز در گوشش دمت نکته مخوف در رخ خورشید افتد صد کسوف تا به گوش ابر آن گویا چه خواند کو چو از دیدای خود عشک راند تا به گوش خاک حق چه خوانده است کو مراقب گشت و خاموش مانده است در تردد هر که او آشفته است حق به گوش او معما گفته است تا کند محبوسش در دو گمان آن کنم که او گفت یا خود ضد آن همزه حق ترجیح یابد یک طرف زاندو یک را برگزیند زانکنف گر نخواهی در تردد هوش جان کم فشار این پنبه اندر گوش جان تا کنی فهم آن معماهاش را تا کنی ادراک رمز و فاش را پس محل وحی گردد گوش جان و چه بود گفتنه از حسنهان گوش جان و چشم جان جز این حس است گوش عقل و گوش زن زین مفلس است لفظ جبرم عشق را به صبر کرد وان که آشق نیست حبس جبر کرد این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی مهست این ابر نیست وربواد این جبر جبر آمه نیست جبر آن اماره خودکامه نیست ایشان شناسند ای پسر که خدا بکشادشان در دل بسر غیب و آینده بر ایشان گشت فاش ذکر مازی پیش ایشان گشت لاش اختیار و جبر ایشان دیگر است قطرها اندر صدفها گوهر است هست بیرون قطره خرد و بزرگ، در صدف آن دور خردست و سترگ. طبع ناف آهو است آن قوم را، از برون خون و درونشان ماشک ها. مگو و کینمایه بیرون خون بود، چون رود در ناف مشک چون شود، تو مگو کینمس برون بود محتقر در دل اکسیر چون گیرد گهر اختیار و جبر در تو بود خیال چون در ایشان رفت شد نور جلال نان چو در سفره است باشد آن جماد در تن مردم شود او روح شاد در دل سفره، نگردد مستحیل مستحیلش جان کند از سلسبیل قوت جان است این ای راست خان تا چه باشد قوت آن جان جان گوشت آدمی با عقل و جان می شکافت کوه را با بحر و کان زور جان کوه کن شق حجر زور جان جان در انشق القمر گر آید دل سر انبان راز جان بسوی سوی آرش سازد ترکتاز اضافت کردن آدم آن زلت را به بخیشتن که رب بنا و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا که به ما اقوی تنید. کرد حق و کرد ما هر دو ببین. کرد ما را هست دان. پیداست این. گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان؟ خلق حق افعال ما را موجد است. فعل ما آثار خلق ایزد است. ناتق یا حرف بیند یا غرض کی شود یکدم محیط دو ارز. معنی رفت شد غافل ز حرف. پیش و پس یکدم نبیند، هیچ طرف آن زمان که پیش بینی آن زمان تو پس خود کی ببینی این بدان چون محیط حرف و معنی نیست جان چون بود جان خالق این هر دوبان. حق محیط جمله آمد ای پسر و ندارد کارش از کار دگر گفت شیطان که به ما اقویتنی کرد فعل خود نهان دیو دنی، گفت آدم که ظلم نا، نفس نا. او ز فعل حق نبود، غافل چما. در گناه او از ادب پنهانش کرد. زان گناه بر خود زدن او بر بخرد. بعد توبه گفتش ای آدم، نمن، آفریدم در تو آن جرم و مهن نه که تقدیر و قضای من بدان چون به وقت آزار کردی آن نهان گفت ترسیدم ادب نگذاشتم گفت هم من پاس آنت داشتم هرکه ارت حرمت او حرمت برد هرکه آرت قند لوزی نخورد طیبات از بحر که لطیبین یار را خوش کن برن جان و ببین یک مثال ای دل پی فرق بیار تا بدانی جعبر را از اختیار دست کن لرزان بود از ارتعاش وان که دست ای را تو لرزانی زجاش هر دو جنبش آفریده حق شناس لیک نتوان کرد این با آن قیاس زاند پشیمانی که لرزانی دیش، مرتعش را کی پش دیدیش. بحث اقل است این چه عقل آن هیلگر تا ضعیف رهبرت برد آنجا مگر. بحث اقلی گردر و مرجان بود، آن دگر باشد که بحث جان بود. بحث جان اندر مقام دیگر است، باده جان را قوام دیگر است. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با بلحکم همراز بود. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بلحکم بوجهل شد در حکم آن. سوی حس و سوی عقل و کامل است، گرچه خود نسبت به جان او جاهل است. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب بحث جانی یا عجب یا بلعجب زو اجان آمد نماندان مستزی لازم و ملزوم و نافی مقتزی زان که بینایی که نورش بازغ است از دلیل چون عصا بس فارغ است تفسیر و هو ما اینما کنتم بار دیگر ما به قصه آمدیم ما از آن قصه برون خودکی شدیم گر به جهل آییم آن زندان اوست ور به علم آییم آن ایوان اوست ور به خواب آییم مستان ویم ور به بیداری به دستان ویم ور ابر عبر پرزرق ویم ور بخندیم آن زمان برق ویم خشم و جنگ عکس قهر اوست وربا صلح و عذر عکس مهر اوست ما کیم اندر جهان پیچ پیچ چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ سوال کردن رسول روم از عمر رضی الله عنه از سبب ابتلای ارواه با این آب و جسم چون عمر آن رسول آن را شنید روشنی در دلش آمد پدید معو شد پیشش سؤال و هم جواب گشت فارغ از خطا و از سواب اصل را در یافت و بگذشت از فروع بهر حکمت کرد در پرسش شروع گفت یا عمر چه حکمت بود و سر حبس آن صافی در این جای کدر آب صافی در گل پنهان شده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 چون نبیند آنچه ما را دیده شد صد هزاران فایده است و هر یکی صد هزاران پیش آن یک اندکی آن دم نطقت که جزو هاست فایده شد کل کل خالی چراست تو که جزوی کار تو با فایده است پس چرا در طن کل آری تو دست؟ گفت را اگر فایده نبود مگو ور بود هل اعتراض و شکر جو شکر یزدان توق هرگردن بود نی جدال و رو ترش کردن بود. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس پس چو سرکه شکرگویی نیست کس سرکه را گر راه باید در جگر گو بشو سر کنگبین او از شکر معنی اندر شیر جز با خبت نیست چون قلاسنگ است و اندر زبت نیست برنامه های مصنوی معنوی مولوی را، مینوکتاش و شهباز باز ایرج، تهیه و اجرا کردند.